داستان دوم ظلم آنجا روی تنها درخت توی دهکده نشسته بود دلگیر گرفته و بغزناک با چهرهی سوخته از آفتاب و عشق رادیوی کهنه کوچک پدرش به بالاترین شاخه آویزان شده بود و او گاه برای رهایی از آن را روشن می کرد. گلویش پر از بغض و درد بود دلش شور میزد کف دستهاش انگام بالا کشیدن از درخت خراشیده بود ناآرام و دلواپس کت پاره و خیس پدرش را به خود می پیچید. گرسنه بود و بی حال نمیدانست چه بکند سرش از افکاری بی بند و بار و دلش با غصه و درد انباشته بود نگاهش از روی سیل خروشانی که درخت و او را در بر گرفته بود و تا پای تپه دور دامن گسترده بود می میرفت و میرفت تا آنجا که پدرش از آب بیرون رفته بود و برای کمک خود را به جاده ای که به دهات دیگر و شهر می رسید کشانده بود خودش هم درست نمیدانست چه اتفاقی افتاده بود با پدرش پشت بام خانشان را بانگلان میکردند تا درز و دروزی را که از بارانهای چند روز پیش درست شده بود به هم بیاورند مادرش با خواهر و دو برادر کوچکش در اتاق نشسته بودند و او از سوراخ پشت بام صدای هورهٔ دلگیر مادرش را میشنید آوازی که همیشه دل او را به درد میآورد یک بار هم از همان سوراخ که نور برای اتاق می برد مادرش را دید که پشت دار بسته نشسته بود و با انگشتان لاغر و کمر خمیده به کار مشغول بود این را هم میدانست که پنج ماه تمام بود که مادرش روی آن چه کار میکرد کاری که مزدش را هم قبلا خورده بودند. پدرش رادیوی کوچک دست دومش را که خیلی دوست می‌داشت و با صرف جویی و بریدن از شکم آنها خریده بود به گردن او آبیخته بود و به آهنگ‌هایی که پخش می‌کرد گوش می‌داد. آن وقت آسمان که از صبح ناآرام بود تیره تر شد. برق زد و آسمان قرونبی دهکده را لرزاند و سراسر آباد یک یکسره سیاه شد. بره سگ پشمالوی آنها از پایین زوزه کشید، مرخ ها قدقد کردند و پدرش سلوات فرستاد و صدای شکستن و هیاهو، بعبع بع و قرش و ریزش از راه دور به گوش رسید و بارانی چون لوله ی آفتابه بر کده فرو ریخت. از روی ها پنجلی و پسرش که چوپان ظلم بود، با شتاب بالا دویدند فریادشان با همهمه و آسمان قرن به درهم آمیخت و ناگهان همه را آب فرا گرفت او و پدرش تا آمدن به خودشان به جنبند خانه تکان خورد فقط پدرش توانست او را بغل کند و با شتاب به پشت بام خانه محبلی ببرد و از آنجا خود را به درخت توت برسانند و از آن بالا بروند پدرش ابتدا او را به بالای درخت فرستاد و خودش را که تا کمر در انواج گلالود و خروشان دست و پا میزد با تقلا بالا کشید. به عقب که نگاه کردند نه ای و نه عثری. دیوار خانه محبلی که بالاتر از خانیان آنها بود در آب فرو میرفت. از بالای درخت از دور دهکده را میدیدند که چگونه مثل غریقی ناامید عقب مینشست و حباب هایی که شاید از دهان مادر یا خواهر یا برادرهایش بیرون میآمد روی آب می ترکیدند. از زلماباد جز خانه باقی که در کنار موستان بالای تپه ها قرار داشت و خانه اربابی و انبار گندم جهانگیرخان که از سنگ و سیمان ساخته شده بودند، دیگر چیزی نمانده بود چند نفر زن و بچه از دور کنار موهستان شیون می کردند و خود را غرق گلولای می و گونه هاشان را می خراشیدند. روی آب پر از کاه و تیر و چوب و پشکل بود گاه سر و کلهی که دست و پا می زدند و فرو می رفتند سک هایی که خود را به سوی تباها می کشندند گوسفندهایی که سنگین میشدند و غرق می گشتند و گاوها و اسبهایی که شناکنان رو به می ها میشتافتند دیده میشدند. برای آخرین بار از دور قیافه هراسناک مادرش را دید. سربند از روی سرش باز شده بود و گیسوان پریشان سیاهش روی صورتش ریخته بود. نگاه نامیدش به او دوخته شده بود و دستهایش بیهوده در هوا دنبال پناهگاهی میگشت. موج خروشانی او را در خود فرو برد و کاها و پشکلها در نقطهی که او بود رویش را پوشاندند. خاص خودش را به آب بیندازد اما پدرش که نفس نفس میزد و کبود و گیج و منگ به نظر می رسید او را گرفت و روی شاخه ای نشاند رادیو را که در کشاکش فرار سالم مانده بود از گردن پسرک گرفت و به بلندترین شاخه ویخت سپس چشمهایش را بست و, گشود و از دیدن آنچه بر آنها گذشته بود ناله سوزناکی کشید و با دو دست به سرش کوبید و های های دلخراشی سر داد و او با بوز با صورتی خیص و داغ با پدرش هم نوایی کرد چونان گریه ای را فقط یک بار دیگر از پدرش دیده بود و آن زمانی بود که گاوشان از گرسنگی مرد یاد برادر کوچکش نصرت افتاد که آن روز صبح چایش را موقع خوردن صبحانه ریخته بود نصرت بی تقصیر بود میخواست که تکهی نان بکند و چون سفت بود دستش ناگهان به استکان چای خورد و آن را ریخت. پدرش با سیلی صورتش را گل انداخت و مادر فحش داد. دیگر به او چای ندادند. همیشه اینطور بود. هر کس چایش را می ریخت دیگر به او چای نمی دادند. نصرت نان بیات را با گسته و بخص جوید و خورد. هنوز غیافهش را به یاد داشت که چگونه برای بلعیدن نان رک های نازک و ظریف گردنش راست میزداد و چشمانش را میبست پسرک با خودش زمزمه کرد چه آرزویی روی دل نصرت ماند آرزوی یک چای شیرین چشمانش را بست و با خود گفت شاید خواب دیدم ای خدا خواب باشد خواب باشد اما بودن او رویان درخت سرما و باد و باران آن همه آب که ظلمابات را پوشانده بود و تنهایی او نه این خواب نبود پرندهی تنها پرکشان به درخت نزدیک شد خاص بنشیند چون او را دید پرگوشود و درخت او را تنها گذاشت پسرک سر و صورتش را که خیز از باران بود با سین کتش پاک کرد و گرگه را سردا پدرش او را آنجا گذاشته بود و برای کمک گرفتن خود را به آب زده بود و رفته بود. آخرین گریه ها و بوسه ها و دعاهایش را به یاد داشت با پلک های قرمز و چهره زرد با دست هایش که مثل دهن اره زبر و خشن بود. او را نوازش کرد و بوسید و رفت تا شاید چیزی به دست بیاورد و او را از گرسنگی و مرگ برحانت. شب سیاه و سنگین و سرد میآمد نه او سگهای گله و نه صدای ریز و یک نواخت بازگشت گله ها از چرا و نه بانگ جای جای مادرش که مرغها را به لانه میکرد فقط صدای باد و ریزش باران بود که در شاخهای درخت توت می پیچید. یک لحظه تصور کرد که مادرش از وسط آبها چراغ لامپا به دست دارد پیش می آید. چشمانش را با اشتیاق گشود. اما هیچکس نبود. تنها شعله های آتشی که مردم روی های دور افروخته بودند در آب افتاده بود. تنهایی او را به یاد رادیو انداخت. آن را روشن کرد. خانم گوگو شما به چه غذایی علاقه دارید؟ رادیو را بست و آب دهانش را خورد داد. از سرما لرزید و کت پاره و خیز پدرش را محکم به خود پیچید و دوباره برای فرار از تنهایی رادیو را گرفت. خانم گوگوش چرا به پرچم آمریکا علاقه دارید؟ میبینم که به پشت لباستان یک پرچم آمریکا دوخته اید. خب دیگه این مده در فرانسه که بودم؟ رادیو را بست و به شعله هایی که در آب میرخ چشم دوخت. خودش هم از بزرگی آن همه فاجعه خبر نداشت. باور نمیکرد که مادر و دو برادر و خواهرش دیگر وجود ندارند. یاد بره افتاد که قبل از سیل زوزه وحشتناکی کشیده بود نمیدانست بره کجا رفته است در آن تاریکی که باد هو می کشید ناگهان ترکید سر را رو روی شاخه توت گذاشت و های های گریست هقهق گریهاش با خروش سیل در میامیخت باد صدای گریه میآورد صدای کودکی گرسنه میآورد صدای بعبع و او او میآورد و او خودش را محکم به درخت چسبانده بود دوباره به رادیو پناه برد زردی من از تو سرخی تو از من بچه ها کف بزنید بچه ها کف بزنید بچه ها برخصید. شادی کنید بله شنوندگی عزیز با وجود اینکه امسال برای جلوگیری از پیشروی کبیر و حفظ بوتها بوته چهارشنبه سوری وجود نداشت با این وجود بوتهای قاچاق بزم همه مردم را گرم کرد جیغ و فریاد بچه ها یک لحظه بیخودش خودش کرد اما وزش بادی سرد و گرسنگی او را به خدا ورد پاهایش یخ زده بود و باران روی پوست بدنش نفوذ کرده بود دستهایش چنان رخت و بیحال شده بودند که نتوانست رادیو را ببندد از دور شعله ها رو به خاموشی می رفتند. دردی در شکم خالیش می پیچید. و این درد از گلویش بالا می آمد و دهانش را پر از آب می کرد. آب دهانش را با لذت فرو برد دستهایش را به زور به شاخه درخت گرفته بود. جز نان و چای صبح تا آن وقت چیزی نخورده بود. گرسنه و بیحال و سرما زده. چشمانش را گشود. تصور کرد که پدرش از دور با صفری نان و پشتهای بوته خشک می آید و مادرش سماور را آتش می اندازد. برادر کوچکش نسرت چای شیرین دیگری می خورد. و خواهرش بر سر نان به برادر دیگرش پریده است. دستهایی یخزدش برای گرفتن نان در تاریکی دراز شد اما نتوانست چیزی را بگیرد. از شاخ لیز خورد توانایی آن را نداشت که شاخه را بچسبد. از همان بالا با سر در تاریکی سقوط کرد. آب دهان گشود و او را در خود فرو برد. دست و پازد بالا آمد فریاد کشید. و برای همیشه پرو رفت. جغدی از دور به درخت نزدیک شد و کنار رادیو نشست. سپس از سر و صدای رادیو رمید و فرار کرد. مرد خسته با دردی کشنده در دل و بغزی در سینه برمیگشت. دوباره به آب زد از دور درخت توت را دید که تنها در آب نشسته بود. خیلی به چشمش فشار آورد تا پسرش را ببیند. کت خودش را می دید که از شاخهی آویزان شده. با خود اندیشید که شاید پسرش پشت کت نشسته است. خورشید بالا می آمد. تکه های بزرگ ابر اینجا و آنجا در آسمان پهن شده بود. مرد به هر جا که سر کشیده بود آب بود و آب. تپاها پر از مردم گرسنه بودند سیل همه چیز را برده بود جاده که به شهر می رفت خراب شده بود و آب آن را گرفته بود گرسنگی آزارش میداد اما امید به نجات تنها پسرش او را به می داشت. با تقلا خود را به درخت رساند بالا رفت گتش را با شتاب از شاخه کند هیچ کس آنجا نبود موی کرد و نالید و چشمانش سیاهی رفت رادیو با صدای زعیف یخبار پخش میکرد سیل در چند روستای اطراف کرمانشاه جاری شده اما تلفات جانی نداشته است این دهات قبلا از سکنه خالی شده بودند از طریق هوا برای روستاییانی که در سیل محاصره شدهاند خورما و آرد ریخته شده است چند هلیکوپتر به نجات مردم چتافتند مرد با خشم و کین به طرف رادیویی که آن همه دوستش داشت حمله برد، بلندش کرد و با فحش و ناسزا در حالی که کف به دهان آورده بود، به تنه درخت کوبیدش، کوبید و کوبید تا به صورت مشتی آشغال درآمد. دو دستیان را به دهان برد و جلد رادیو را گاز گرفت و دوباره به تنه درخت کوبید و با تمام قدرت آن را در آب پرت کرد و فریاد زد: دروزن! دروزنیل دالخیز، دالخیزیل دروزن در آن حال، به تپاهای دور نگریست و چون این به نظرش آمد که تمام مردمی که روی تپا سرگردان و گرسنه و سرمازده جمع شده بودند و مادرهایی که بچه های را در آغوش می همه فوش می دهند و هر که رادیو دارد، آن را با لگت خرد و خاک شیر می